اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشرکین من فكين حتى تاتيهم البینه بنا می خدوند بخشنده بخشایشگر کافران از اهل کتاب و مشرکان دست از آیین خود بر نمی تا دلیل روشنی برای آنها بیاید رسول من الله صحفا مطهره. پیام بری از سوی خدا که صهیفه های پاکی را بخواند. فی و در آن نوشته های صحیح و ارزشی باشد وما تفرق الذین اوتو الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البینه اهل کتاب اختلاف نکردند مگر بعد از آن که دلیل روشن برای آنان آمد وما امرو الا لیعبدالله مُخْلِصِينَ له الدِّينَ حنفاء حنفاء و, الصلاة و, الزكاة و, دين القيمة. و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید بازگردند نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و این است آیین مستقیم و پایدار این الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند جاودانه در آن میبانند آنها بدترین مخلوقاتند اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترین مخلوقات خدایند جزاؤهم عمدان ذر ربهم جنات عدن تجری من تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشی ربه پاداش آنها نسل پروردگارشان باغهای بهشت جاودانه است که نهرها از زیر درختانش جاری است، همیشه در آن میمانند، هم خدا از آنها خوشنود است و هم آنها از خدا خوشنودند و این مقام بالا برای کسیست که از پروردگارش بترسد